به فرجام گفتی مردان مرد کنی ب... چن... چند بگزین ز بحر نورد از این گفته کرد بوکسری باز دل من از گفته خود نیام دل پنجه های روی مختب رو میشنوید استاد فریدون جنیدی داستان های شاهنامه رو برای ما میخوانند رمزگوشایی میکنند و در یک فضای خیلی خوب همراه شما که شاهنامهاتون باز هست و با ما شاهنامه رو میخوانید در خدمتون هستیم اگر اجازه بدید من باز کنم تلفن‌های خودتون رو با ما رو تر بگیری سوالات خودتون رو مفرق کنید که ما بتونیم زمان بندی کنیم. زمان برنامه بتونیم به تمامی تلفون شما با امید خدا پاسخ بگیم تلفن‌های ما 222-485 222-485 2 588 و شماره پیامک سی هزار پانسد و پیامک ما هستش و باز هم سوال اومده که در مورد بنیاد نش پرسیدن من از میکنم تلفن بنیاد نشاپ رو و پرسیدن که شما آدرس اینترنتیشون هم بفرمایید در روز شده فرزندان و بنیاد که مشغول در برآوردن این همین سایت هستند به منقول داددن که هم با نوروز با یک امیددگی نفسون به دست جبانانده را میخواهد رسید درود بر اون فرزندان خیلی هم سلام برید بس از طریق تلفن میتونه تماس بگیرید با بنیاد نشابه فیلن 88 هشت 27 و شش 96 هفت 84. چهار هشتادو, هشتادو هشت و شش هفت چهار که هم که اومده اون دوستمون گفتن من بینایی دارم چون میتونم بنویسم منتها یه همچین چیزی عل من دیدم حالا من اینو کامل بهشون میم خیلی هم تشکر کردن اصلا خب پس ذری با ض بوده بر بله معنی زریز. سهبح ساله ایران در زمان گشت آست بله با ریه بوده که جان خود در اون جنگ ها فدا ایران کرده باه زریز بله. بله, بله پدر بستور بله از نبر معروفه. بله. معروف بله یادگار یادار زرییان ب بله. بله. بله. با دنیا فرابان آیا واجهه های ا یهه می تررای از, بزر... از پییم با درود فراوان آیا واجه تاق و اتاق فارسی هستند لطفا درباره باره واجه های سکرنا و سپر توضیح دهید شاد باشید درود و شما سکرنا من نشیدم سپر که خوب یه واجه ایرانیه که در حقیقت در برگیرنده یه ستارگان بینام است شما دین ستارگان برزیاد داریم که هفت ستارگان هستن که دور خورشید میچرخن دوازده ستاره دوازده مجموع هستن که اینها خورشید هر ماهی با یکی از اینا حرکت میکنه یعنی برمیاد و طول میکنه و یه مطار سوار فرکی دیگه هم هست که شناخته شده هستند که در آسمان نزدیکر به زمین هستند بعد اون آسمان دورتر که کمون در حقیقت کاخشان به کاخشان رو نشون میده اون فارسی. اما سکرنا من نشنیدم تا با حال تا تاق و اتاق هم فارسیه برای که ما نخستین کسانی بودیم که اتاق رو ساختیم و تاق روش کنشتیم و در اخبار زمان گشتاس و میبینیم که نهاد از برای آذران گنبادان یعنی نخستین بار گنباد تاق تدیل شد بکنباد چون تاق میدونید که زربیه به درازای اتاق کشیده میشه اما گنباد یه چیزیست که روی چهار تاقه زده میشه و گرده میاد بالا و نخستین در هم هم در زمان گشتاست در شهان هم ازش سراغ داریم و اینا همه ساخت ایرانیانه. همه بح. با درود به استاد گرامی واژه معادل انسان و بشر در زبان عوستایی چیز شاد باشید پیروز باشید مره تا در زبان عوستایی و بعد در پهلاوی شد مردم در پرسی شد مردم این باژه برابر است با انسان و بشر انسان از ریشه این نسل یعنی فراموش کردن در زبان عربه بباده اما مردم یعنی زندهی که خواهد مرد یعنی در خواهد گذاشته جهن میشه, میشه مردمان اگر توجه هم بکنید بچه های هیچ کدوم جهن و مردمان رو از یاد ام من بارها هزار بار از بچه های کچولو شد مردم ها چی میگن همه مردم رو مفرد میدونن بر اساس دستور زبان فارسی اون چیزی که اون دوست ما گفت بود که دستور ناقصه بچه میفهمه که باید بگه مردمان ولی کم کم که تربیت نادرست این فشار می روی, روی روان کودک اون وقتی که کم کم دیگه آم به کار نمیره مردم به کار میره مردم به جای انسان و بشر و پیامی که دیگه ای که اومده در مورد این هستش که پیداش نمیکنن ای بابا اینجا جالب سوال جالبی بود در مورد شاهنامه با درود چرا نصیحت‌های هفتگانه انوشیروان از شاهنامه حسب شده با سپاس شمسایی از رشت. اینا چیزایی رو که من حفظ کردم اینها همه بر اساس دانش و بر اساس بینش و بر اساس همه اون خردوزی است که باید به با کار بریم در افضاده ها و اون پانت‌ها از آن کسران نیست و باید به سخنانه فارسی افسوده شده و شما به دقت بیشتر بخونید می بینید که چرا افسوده است چون من در زیر نویس همه اینا رو شار دادم یه پیام دیگه داریم که از گیلان هست خانم فرانکه از گیلان لطفا آخر مثلا آخر برنامه به این هفته بعد ساعت چند برنامه شروع میشه من اولین بار هست که برنامه شما رو گوش دادم اما یه جورایی گم کردم نه برنامه ما خانوング فرانک و خالا شنواندگان عزیز که برنامه ما رو میستند شاید از خالا شنواندگی برنامه ما برنامه پنجرهای روی محتوب است ما از شنبه تا چهارشنبه شمبه برنامه پنجرهای روی محتوب داریم از ساعت نهونی این شب تا ساعت یازده شب یعنی یک ساعت و نیم برنامه داریم که شنبهها ها یک دوست عزیز دیگری هستند دیگه شنبه ها استاد فریدون جنیدی هستن که در بورس فردوسی صحبت میکنن فردا شب دوشنبه آقای دکتر قطبودین الدین صادقی هستن استاد قطبودین الدین صادقی هستن در باره ها صحبت کنند که در باره آیین صحبت خواهیم کرد فردا شب سه شنبه گروه دیگه از دوستان هستن که در باره افقان کازه فکر میکنن باشه فردا شب چون من نمیدونم خودم میسم از ذهنم دور شدید ببخشید و چهارشنبه شب ها آقای دکتر بولخایی هستن در بایی فلسفه هنر صحبت میکنن از این زمان ها رو به دوستانم بگیم که بزنن. خب استاد میفرموندید گفت وقتی که رویین برگشت به نزده پدر چون روین بیامد به نزده پدر مثل این ها رو خوندم من بله رو خوندم به نیروه تیز بر آرام برای رمضان انجاما راست خیز بله تا به اینجا آمدیم و در حدود 15 صفحه هفت تا به اینجا میسه پر از کینه همون میسندی؟ آره الان صد سه. پر از کینه سالار توران و خروشان بیامد با آورگاه چو گودرز کشوادگان را بدید سخن گفت بسیار و پاسخ شنید دو گفت ای پرخره پهلوان برنجندرون چند پیچی روان و اون سیاه وخش رازان چه سو بود که از شهر توران برابی تو دود توجه بفرمایید که این جنگ در خاک ایران انجام شده و پیران میگید تو از شهر توران چرا دود برمیاری یعنی خودشون اومدن ولی الان که آثار شکست پیدا شده و به این ترتیب میگید تو برای چی میخوای توران رو از شهر آباد توران دود برمیاریم بداند که ایچی او جای نیکان گزید. نگیری تو آرام کو آرمیدنی دنی در اون جهان جایین به جایی که رسیده و او آرامش پذیرفته تو ولی تو آرام نداری سپاه ها کشور همه شد تباه که آمد که بردار این کینگاه تو از لشکر خیش بیرون خرام مگر خود برای از این کینه کام اگر من به دست تو گردن تباخ نجویید کینه زتون را سپاه او تو شوی کشته بر دست من کسی را نیازارم از انجامن مرا با سپاه تو پیکار نیست به بریشان زمن نیز تیمار نیست یعنی نباد قصه منو بخورد مخصود به پیران چون این گفت که نام ورش شنیدیم گفتار تو سر به سر سیاوش به سوگند تو سر بداد تو دادی به خیره را به باد به بیهوده. آن پس که نزد تو فرزند من بیامد کشیدی سر از پند من، به تابیدی و جنگ را ساختی به کردار آتش همی تاختی، مرا خواهش از کردگار جهان بر این گونه بود آشکار و نهان که روزی تو پیش من آیی به جنگ، کنون کامدی نیست جای درنگ، به پیران سرکنون اکنون ما گاه بگردیم یک بادگر، بی سپاه، به خوردند سوگند یک بادگر که کس بر نگرد آمد از کینه سر چند بیت در ویرایش من جوز ها به شما نیمده بود در ویروشی پسین میبینم که اونها هم جوز افسودها هست و باید اینا رو حسب بکنیم مثلا. چند پهلوان میان با هم دیگه می که نام ها نادرسته مثلا کلباد ما نداریم یا مثلا فضل اون زره که کشنده سیاه بود نیست در این زمان یا اخواست اینا رو من گفتم قبلا اخواست یعنی ناخواسته کسی نمیاد نام فرزند خودشو اخواست بذاره یا زنگوله هیچ کس نیست در ایران و توران که بیاد اسم پسرشو بذاره زنگوله بنابراین اینها همه افسود است میرسیم به رزم گودر و کشور با پیران بیسید که خودشون اینجا اعلام کردن که من و تو با هم بجنگیم. سفهدار ایران و توران دو جمع فراز آمدن کین به هم میخواد من دو تا شیری که به هم میبیند باز بخونم خیلی بودشت ما 45 اما 103 105 بخوردن سوگند یک بادگر که کس برنگر داند از کینه گودرز با پیران سوگند خوردن سوگند به اینجا میاد سپهدار ایران و توران دو جم فراز آمدندند کین به هم به تیغ و به خنجر به گرز و کمند هر گونهای برنهادند بند از آن پس کمان برگرفتند دو تیز دو سالار دشگر دو هوشیار پیر نگه کرد گودرز تیری خدنگ که آهن نتابد مرورا نه سنگ به برگستوان برزد و بردرید تکاور بلرزید و دم درکشید این تیر پیران خورد به برگستوان عصب نگه کرد و در تیری خدن که آهن نتابد مرورانه سنگ به برگستوان برزد و بردرید تکاور بلرزید و دم درکشید مرد اسب پیران مرد بیفتاد و پیران در آمد به زیر بغلطید زیرش سواره دلیرو، بدون است کامات زمان فراز زمانین عجل بدون است زمان فراز از اون روز تیره نیاورد جوابش. شما پیامدهایی که وقتی نمی‌خوندم چه،, چه کردم، نه. بی, بی بدون پیش بینی قبلی، دست بردم بالا سر. شما من به پیامک بود دیدم؟ شما یه فکر داشتید که زمان پیران فراز است؟ پیران پهلوان دوستدار ایران بوده خواهی نخواهی مهرش به بوده بارها بارها دیدیم دیگه حالا یک چینی پهلوانی متصفانه در جنگ ناخواسته بین دو خدرتمند دیگه این از دست میره من به عنوان یک ایرانی دستم بردم بار سر بدون این که پیشبینی کرده باشه نخداگاه نخداگاه بدان استخامت زمان فعضان روز تیره نیا بچه بخواستن همین شد بدان کوه سربر دوان که از او بازگردد مگر پهلوان یعنی گودرز نگه کرد گودرز رو بگریست زار ببینید پهلوان ایران سپاه به حال پهلوان توران گریه میکنه که او هم بالاخره نیکیاش به ایران رسیده بود همینطور که من ناخداغا دستم بردم بالا سر گودرزم همطور فهم کرد نگه کرد گودرز رو بگریست زار بترسید از گردش روزگار به کش نیست با کس وفاینی روزگار با کسی وفا میان بسته دارد زبهر جفا فغان کرد که نام ور پهلوان چه بودد که گشتی پیاده دوان به کردار و نخچیر در پیش من کجا تان سپاه ای سر انجمن کجا همه زور و مردانگی صلیح و دل و گنج و فرزانگی ستون گوان پشت افراسیاب کنون شاه را تیره گشت آفتاب یعنی آفتاب افراسیاب تیره شد چون تودی پیاده شدیدن از من چون کارت چنین گشت زنهار خواه بدان تا زنده برم نزد شاه دربار باره زنهار و زنهار خواستن و زنهار خاری هم من در چند جلسه صحبت کردم زنهار همین که کسی میخواست میدرنگ بود زنهار بدن در آین ایران پیش سرش هیچ هیچ زین هار هم به زبان اوستایی زه زعیننگ هر یعنی در پناه زین افسار یعنی جنگ افسار کسی بودن چو چنین چون گشت زنهار خواه بدان تا زنده برم نزد شاه به دو گفت پیرون که این خود مباد به فرجام بر من چنین بکت مباد یعنی یک عمر جنگیدم حالا زنهار بخوام نه نمیخوام هر دو پهلوانان هر دو با فرمانش هر دو غرور دارن نگاهی که می‌بینه دیگه ازو خسته میشه ولی زنوار نمی‌خواد چون پهلوان چون پهلوان بیان داغت خنجر به کردار تیز درآمد به بازوی سالار پیری پیر یعنی خورد به بازوی گودرز چو گودرز شد خسته بر دست اوی خسته یعنی مجروح سکینه به خشمند آورد روی بیان داغ ژوپین به پیران رسید سره بر벌ش سر به سر برید. جوپین یک نیزه بوده بندزه یک گس نیزه که بندزه دو گس بود در سواری بخار برده می شود. ولی جوپین بندزه یک گس بود که در دست می گرفتن و این رو می شود پرت کرد ولی نیزه بزرگ رو نمی شود پرت کرد و تفاصله بیشتر این برد برد چون شعر جیان به سر یعنی پیران نی نویسنده داستان ایرانه که در حقیقت با واجه بسیار در خور ستارش همیز از اون پیر شیر یاد میکنه یا از اون شیر پیر چون شیر جان اندر آمد به سر با داور دادگر اون کوه سر بر زمانی تپید پس از کین و آوردگه آرمید جهانش به چون این گفت درس که شعر سر پهلوانان و گرد دلیر، جهان چون من چون تو بسیار دید، نخواهد همی با کسی آرمید. سرش را همی خواست از تن برید چونان بد کنش، خیشتن را آمدید، درفشی به بانیچ، برپای کرد، سرش را بدن سایه در جای کرد، سوی لشکر خیش، به روی، چکان خونز با زود شون خوبیشوی خیلی از استاد جنیدی عشکایی میکنم به خاطر اینکه خودم دوست دارم علرق که خیلی دوست دارم خودم مثلا حواسم پرت میشه میام اینجا پیامکاری می‌کنم میخوام انتخاب کنم رو که متوجه به موضوع باشه ببخشید استاد یه جایی من دیدم شما رو دست رو دستونو آوردین بالا سرین وای منظور وای این پهلوان منظور این بود دیگه وای. درسته نه اینکه منظوری داشته باشم نه نه میگم ناخودآگاه این کارو کردم قبلا چرا این پهلوان؟ میبینی که گودرز خودرتن... با اندوه رو میشه نویسندگان شاهنامه هم او رو شیر رو به شمار بیارن نرشیر به شمار برد. یعنی داستان ایران اینقدر درسته این تاریخ اینقدر درسته هم دیدید در کشه شدن هومان هم قمخاری کردن نویسندگان شاهنامه هم بیجن خودش خودش دونست که این پهلوان آنی اخلاق دلوقت ایران دلوقت ایرانی است پهلوان کشه شده ولی تیمارداری میکنن هر من نه نه میدونم بی... می اوای برای خیلی مشکل بود بودم منقازمند کردم به هم خودم این موقعی چمک روی هم صفحه برای الاندی عادت کرده ببخشید من با درود بر روان پاچنیکان ما استاد روینتن رو رمز گشایی کنید راز اینکه شخصی مثل اسفندیار روینتن است چیست بابک خوردممی از کااس من میدونم این رو استاد فرمودید اما پرمک های زیادی اخ در مورد روینتن در باری روینتن اومده برنامه گذاشته هم اومده بود روینتن اون کسانی که شناور رو و شهانامه رو مقایسه کردن با ایلیاد و او دیسو و اون آشیل و فلان بلده بلده. بلده که این از آشیل گرفته شده در حالی که کل تاریخ یونان از درست هشتت سال پیش آغاز میشه و این مسائل خیلی پیشتر از تاریخ آبادن یونان بنابراین اگر برداشت و اختباسی باشه اونا از ما کردن اما نه اون هم از ایران نیست از دروغ های خود یونانیست منطقه روین تن یعنی کسی که داره تن رو این باشه این یک رمز خیلی مهم داره این من نمیتونم الان بگم در سرتاسر داستان از, از روی این تنی او نام برده نمیشه مگر در پایان اونجایی که نگون شد سر شاخوی از دانپره است بیافتاد چاچیزم ها کمانشده است روستن خطاب بمکن تو گفتی که روی این تنم بلند آسمان برزنیم زمین برزنم من از تو حالا در وضع از دم خواست و چیر من از شست تو چند تیر خدنگ کرد دو گونش اومده خوردم ننه حالیدم از ناموننگ به یک تیر برگشتی از کارزار به خودی برین باره نامدار باره اگر به منی اصب بگیریم که کسی روی اصب تیر خورده شده به چشمش نمیتونه بخوابه اینا رمزای خیلی شگفتی داره که به ایزه این دوستان و فرزندان اسفنزی ها رو رستم من بعدا در داستان ایر ای می میتونیم در برنامه هفته اون دیگه بخش رو بشتریم که قولو بدیم چون خیلی خوبه. این کتاب با چاپش. آها. <تصفيق> <تصفح> <مان بیسبرانه منتظرین> من بی‌صبرانه منتظریم من هم من کار خودم انجام دادم. اون تو صفحه‌بندیاش اینها خیلی گرفتاری داره و بعدم اون فرزندی که این کار رو انجام داده سالیان دل بسته به این کار بوده برای خدمت سربازی رفته کمتر میتونه بیاد. اینی که عقب افتاده و من کار خودمو انجام دادم. امیدوارم که تا حال دیگه ما هم برای نوروز برسه خپز پسوی کردیم میگیم که برای نمشغال کتاب با امیدی از برسه. امید خدا. ما تلفن های شما یعنی آماده هسته شما برنامی پنجره های روی متاب رو میشنیم می استاد فریدون جوندید من ما م تا همینجا داستان باشه داستان ما... باشیم.تون داستان به سر یه بند رسیده برای تلفن های عزیزان رو بیم بهشونونگان زیو بشنیم که سوال کردن پیام کاششون رو بخوانیم. شما پاسخ بدید که تا پایان برنا بتونیم به امید خدا تعداد زیادی پیامک و تلفن‌ها ها رو پخش کنیم من یه پ... پیامت اینجا در باری قدمت و آین قوم کادوس تالش اطلاعاتی به ما بدهید با سپاس از شما بزرگان خانم سورنا از گیلان درود به گیلان و تالش من قوم کهاند کهان بودن آین های این قوم کهان به, به, به ایران کهان باز میکرده ما همه هم با هم در یک زمان دور از تاریخ زندگی بشر تشکیل ایران رو دادیم و آین های کوهن در همه جا هست منطقه بعضی به دلایلی بیشتر آین های رو حفظ کردن مثلا در یه جایی که جنگل باشه مثل تالش و کوه باشه و محاصرش شده باشه شده باشند مردم تالش خب بیشتر در خود خواهند بود و آین های درشون درشون بیشتر است. این دلیل نمیشه که مثلا تاتها نداشته باشند یا کردان نداشته باشند یا در آذربایجان ما آین کوهند نبینیم یا در بلوچستان نبینیم. خواهی نخواهی آینها ها همه برمیکرده به تشکیل اقوام آریایی و تشکیل کشور احورایی ایران. دروت بر استاد جنیدی معناست؟ آیا یا نیست؟ از گرگان آبابک شاد باشید این واجه فقان فقان کشیدن یعنی فریاد کشیدن اما اگر در باره نام افغانستان عزیز میگید این نام رو استعمار براشون برگزید چون رخ خراسان بودن دیگه میتونیم که این شهرها هرات و مر و بلق و همه خراسان بودن و غنده ها رو بست و غزین در نیوزان بودن این نام تازگی داره اما چون خواهران و برادران از جان عزیزتر اونسوی مرز این نمره رو پذیرفتن. ما هم باید به اونها این نمره بپذیریم. سآل هم اینه که از آقای استاد بپرسین که فردوسی چقدر در ادبیات عرب به اسطلاح داشته که تمام شان ناماره که گفته یک لفظ عربی درش نیست دروت بر شما شما با استرابی داشتید برعکس گفتید که در ادبیات عرب چقدر سا... اه... یعنی آشنایی داشته که یک کلمه عربی نفته دوانشاد را بحار در احتسابی کرده بود برای واژه‌های های عربی در شانومه پ... پنج درصد جا گذاشته بود و بعد من با شماری که برودن من فکر کنم یک در, در... باج... در اشعاری که مربوط به خود فردوسی است یک درصد ما با جا بگذاریم برای واژه‌های های عربی فردوسی استاد سخن، دانهای سخن، زبان فارسی، می رگ و ریشه و پیوند زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بود و افتخارشم اینه که با زیباترین و شیواترین بیان سرگذشت اون یاکانه فرخند ما رو به فارسی سرود. درود بر شما استاد فرمودن که در زمان کاوه ایرانیان به آهنگ دست یافتند ولی در کتاب‌ها آمده در زمان جمشید کوتاهی برای ما بفرمایید درود بر شما اون چیزهایی که در زمان جمشید اومده پیشتر در زمان هوشنگ اومده که به با آهان عره و تیشه کرد اینا همه جزوه افسوده هاست و اون زمان زمان دراز دراز فرهنگ سنگ بوده در جهان فرهنگ فلز با با نام کاوه و در زمان فریدون آغاز میشه در جهان با سلام خدمت استاد از قوم ترکمند در شاهنامه پهلوانی هست با تشکر میدونید دونید که در ترکمن حدود هزار سال پیش به ایران اومدن و شاهنامه سرگذشت ایران باستانه یعنی نه تنها از, از ترکمن در شاهنامه نیست بلکه مثلا از مازیار و کوهیارم که در همسایی اونا ها بودن یا اسپابت غارن یا اسپابت خورشید در تبرستان نام نیست داستان ایران باستانه فرهنگمون ماجن تقریبا افتان پاس فاس شهرسان عرسین جان زندگی میکنیم یکی خیلی حریف و زرنگ و آقل و عارف باشه بهش میگن که پیرون ویسه آیا این ریشه در همون او پیران ویسی که در شاهنامه الان زحمت کشیران کنند داره و چه ارتباطی این زحمت و با این موضوع داره با تشکر و سپاس از شما و دینابای دکتر خدا میگه دارد نعمت اللهی درود بر ارسنجان و اهرستان و اردستان و اون بخش از فارس که آینهای بسیار زیبایی دفضیر و زبانهای خوبی رو حفظ کردن بله اون این همین مهر ایرانیان به نصد پیران که هنوز هم شما میبینید که این پیران ویس یعنی پیران پسر ویسه ازش به خوبی یاد میشه سلام و درود بر شما و ساده گرامی میخواستم بدونم اسم دودمان فارسی اسم دوم من فارسی است معنی اون چیست من نفهمی من نمیفهمم از این چیزی من فارسی یعنی چی؟ ف... پارسی یعنی متعلق به قوم پارس البته ما خودمون در داخل ایران پارسیان رو یعنی اونا کسانی که در استان پارس هستن پارسی میگیم منطق دیگران مثل عراب مثل یونانیان و رومیان به خاطر اینکه پادشاهان از دودوان پارسی بودن نام همه کشور رو کشور پارس خلم دوست کردن که این در حقیقت کشور ایرانه و ما متوجه نشدم که این منم متوجه نشدم سعی کردم بستم بخونم متوجه نشدم شاهنامه خودمه شاهنامه ای دارم مال و خط خط و بعد عرضم به حضور امیر باهادر میخواستم اینا مورد تایید استاد هر یا نه خداحافظ درود بر شما من کوشش های همه کسانی که نسخه هایی از شاهنامه فراهم کردم سه پسمیته و واقعاً می‌ذارم همه اونا به نوبه بخوتون یه کار از این دست بردم و من از این کارها هم حتی در ویرایش خودم استفاده کردم خصوص این شونمای آمریکایی رو که گردآورندگان دا امروز ایران اصلا در خور در واقع در خور شمار نمیارن اما از همون من ابيات بسیار زیبایی تونستم در بیارم مونتاژ خوب کاری که من کردم ویرایش همه این های موجوده که اگر به دست شما برسه خودتون داوری کرد. درود بر استاد جنویدی خواستم بگم ما روستایی هستیم و اسمهای ایرانی زیاد داریم و کسی بود در روستای ما که شاهنامه خانی میکرد و کسی یادش نداده بود و نام فرزندانش را شاهنامه گذاشت زریر زوار رودابه سودابه اینو آقایه و تدازی اسم دیگه آی سید شجاعت حسینی شهرستان گرساران روستای بحر شاد باشید روستای؟ بحر انا شاد باشین درود به با اون روستا و درود اون روستاییانی <تصفيق> که شاهنامه میخوندن و این سنت رو حفظ کردن خوشبخت دارید به جایی رسیدیم که ملت ایران همه با هم مشغول شدن به پژوهش در شاهنامه و خب حالا ما با هم اینا رو خواهیم خون ف... فرزندان آینده تون که نام های دارن، برای جهان بود. خدمت استاد جناب آغای جنیدی و عوایل محترم برنامه میخواستم سوال کنم که در جنگی که فرود با توس انجام میده و سپاه ایران علت اینکه توس با وجود دستور پادشاه با فرود جنگ میکنه و اینکه فرود کشته میشه علت رو میخواستم بدونم با وجود اینکه میدونه این فرود هست و فرزند سیاوش سپاسگزارم با تشکر از برنامهتون سلیمانی از نیشاپور ضرورت با شما و این بخش در داستان فرود بخش های بسیار هست که اگر شما شانوم ویرایش منو بخونید متوجه میشید در این جنگ هم چند پهلوان میان میرن از جمله یکی این که مثلا ریونیز در این جنگ کشته میشه به دست فرود اما در جنگ پسین میبینیم که ریفنیز در اون جنگ شرکت داره و حتی تاجش میفته که بحران پسر گودر تاج رو بلند کنه و تازهانش میفته و داستانی که به کشه شدن بحران میانجامه بنابراین اگر ریفنیز در اون جنگ کشته شده باشه نمیتونه در میدان جنگ توران حضور داشته باشه و در اونجا کشته بشه اون تمام این داستان ها افزود هست و اون هم خبر یعنی تورس هم خبر نوش کسی رای دیگر وقتی که توس گفت که ما از این راه بیابان برای چی بریم که با زحمت میشیم این طرف همه آبروان و کشور شهرهای ایرانی کسی رای دیگر نیافکند بود این گفتار خود شاهنامه فدوه بیات افزود در داستان فرود زیاد داره ولی پایانش می‌بینیم که می‌بینیم که توس که ناراحت هست زه درد فرود و زه درد پسر یعنی فقط ظرف کشته شد و بعد هم که فرود در یورش همگانی سپاه ایران کشته شد. بخونید شاهنامه رو متوجه میشید کنها اون داستان ها است. سلام. یه بار دیگه مشخصی شاهنامه رو که توسط استاد در بنیاد نشاب اوچاق شده تکرار بفرمایید. و چگونگی ارسال به شهرستان رو توضیح دهید ضمنن معنی شهر من کهنوج کهنوج کرمان را بفرمایید. آی همزهی یا خانم همزهی. دروت بر شما شماری شما که از بنیاد دارید اگر تماس بگیرید برای شما میفرستند به که نوج هم که قسمت اولش که باشه یعنی دیگه گونش همون گاه یا کوهان تازه از که باشه برای پسند نوجش من فعلاً شتاب نمی بله. انشا شماره تلفن بنیاد نیش آبور 828، 96. آرومتر. چشم. 828، 96، 27، 824، 828، 96، 27. 84 این شماره تلفن بنیاد نیشابور هست تو با استاد صحبت بفرمایید اونجا شا... با بنیاد با بنیاد بله تشکر می از برنامه بسیار من 8 سر سن دارم. الان جناب دکتر که یک تراپی رو می خدا شاده احساس جوانی می کنم. و یه سوال داشتم جناب دکتر که می‌خوام هزار سال قبل مرحوم فردوسی تشخیص کره کور زمین در حال گردش است که میشه به نام خداوند جان و صف، ماه و ناهی دومه. این ایشالا جناب دکتر داشتم شاید کبریان صاحب از شهر کرد یا آمد. برای شما بر و شهرکورد دانش ایرانی خیلی پیشتر از اینها پیشتر از فیدوسی میدونسته که این زمین کراویه و میگرده در واژه عوستایی سکره اینه که در برای کره زمین گفتن همین معنی مفهوم نفته شده یعنی زمین کراوی شکلی که می گرده و حتی در اون زمان که دانش عمومی مثلا جونانوی یو پهنه جهان رو داشت میگرفت و اندیشه های اروپایی که نادرست بود درباره زمین ما میبینیم که ابوریهان میگه که درباره ابوسعید سیستانی میگه که من پیکری رو که درست کرده بود که بر اساس اون زمین دور خورشید میگردم نه خورشید و گرد زمین اون رو دیدم اگرچه دانش امروز عمومی جهان چیز ای میگه می اما به این سادگم نمیتونیم ما گفتار ابو سعید سیستانی رو رد بکنیم یعنی اینکه دستگاه دانشی ایران از مدتها پیش این موضوع رو می‌دونست واस्कोزارم از شما از همه شما شنوندگان عزیز زمان دیگه ای نمونده برای برنامه فقط من چند تا مطلب هست خدمتتون عرض کنم پیامک های زیادی از شما اومده که لطف کردید و ما رو مورد لطف قرار دادید خصوصا مخصوص به ویژه به استاد جنیدی رو و هر کدوم از این پیامک ها به ما انرژی میده پیامکی از اردبیل اومده نیرو میده میویده میویده <میده> بعد اون ذره رو بگیرم حالا تا آخرش بشه به 12 قری که قبولش هم باشه به شما توازد دادن بله 12 دادن نکن... کوشش بکنید خودتونو برسید به تک مانده نگیرید از ادیب فهمید بله از ادیب فهمید گفتن که سرمایه ادیب زیاد هست اما با برنامه‌ای شما رو میشتویم در برای شاهنامه برایمون میکنید و گرمای خونه ما بسیار زیاد شده و گرمیم با عبیات شاهنامه و دوست عزیزی هم ازیر بدین که درود بر اردبیل که واقعا سرده و مثلا ما نمیتونیم درود سرما تا قد بیاریم اما اونا با اون سرما همواره کار کوشش کنند در راه آبادنی ایران و درود با آزرباجیان گرامی و اون فرزندانی که با مهر ایران و با گرمای شاهنامه خانه خودشونه گرم کنند سلام تشکر میکنم از شما مجری خوب و استاد با این تعصب خاصی که به ایران و ایرانی بودن دارید باعث افتخار ما هستید از لاهی جانی رو فرستن اینو خوندم نه بخاطر اینکه خوندم اما واقعا این حس ما هست در این برنامه شاد باشید این تعصب نیست تأثب یعنی یک سونهگری بدون خرب این از روی خرب باید ما بسنجیم ببینیم که این کشور که ذاتگاه خرب و فرهنگ جهان هست باید ستویشش بکنیم نیاکان جمند ما که هزاران سال این سرزمین رو تخت جهان و پای تخت جهان نگه داشتن با اندیشه های تابانه خودشون باید برو ستایش قرار بگیرن یا نه اگر چنین باشه یک سنجش از روی خرد نه از روی ت آره من باشه. یه نمره دیگم کم شد شما نمورتون کم شد من شدمه فکر می یا همون دوازم ماندم تعتصاب به ضروری بی کور اما خط روشنه با نگاه روشن شما ظه می فهمید که من در پایان برنامه درود و ستایش و آفرین فراوان بفستن به هم با کسانی که یادمو کردن چه تلفن و چه پیام به گفتان شما پیامک خب وقت تنگه و ما نمیتونیم به همه اینا پاسخ بدیم شرمش و ناراتیش برای ما باقی امونه امیدوارم شما مانده. شاد باشید و همه ما با هم در راه شناخت ایران برداریم. که هم برداریم با امید خدا شاد باشید پیروز باشید همکاران من در برنامه امشب خیلی کنند آقای محمد رزا هیدری صدابرداران آقای علی تاهری آقای نورالله هیدری هماهنگی پخش آقای کازمی میقاسمی هماهنگی برنامه و ارتباطات سهراب ستایش منش آقای حسین چگینی زاده منم همیز رضا هدایتی را سپاسگزارم از شما ایرانیان عزیز نزیز خوب ایران خدا حافظ